موسیقی مشکور که قابلن به منتجیزیت این بجمالی به منتجیزیت اولیه و لازمش اجتناب مطبعه و مستلزم احتیاط طاقمه اولا قاعده در مقاعده که علم تفسیلی متودد از این بشماری دادیم حالی به مقتداری هم یه بشماری عمل بشه مثل سه تا از دواتی که موندیم چه در صحت تمام و چه در دوتا فرق قبلش حالی علم تفسیلی که متودد در زیم بشماری این مقاعده که حسان علم داره یکی از دو نماز یقینا به خاطر حدثی که در بین بوده به اون یا در ضمن امر یا در ضمن زید اگر علم اجمالی به کلی هدث باشه از این علم اجمالی یک علم تفسیری حاصل میشه که در موارد اعتمام علی کل تقیرن تفصیلا نماز معموم باطل به خاطر یا خودش محدثه یا امامش محدثه برای این علم تفسیری به بطلان صلاح امام حاصل نمیشه برای مهمه علاقه بر تبدیل علم تفسیری حاصل میشه به اینگه نمازش باطن اینها داریم بحث برای که که قایلن به جواز اعتمام اونها ظاهرش اینه که این علم تفسیلی متبدل از این بجمالی به حجت نمیدونن حالا که میشه این علم تفسیلی محکوم به عدم حجیت باشه در فروات فقیه این رو مصنبت داره بحث میکنن اگه میشه علم تفسیری حجت نماشی یعنی معمومی که الان کل تبدیل نمازش باطله که را اندام به در اکثر کتبش و افرایی به جوازه اعتمام میده و این فروات دیگه که تا فرده بعدا برای اینها 6 تا توجیه میگه بخص ما الان در اینه یکی از این فروات که <تصفح> <تصفح> باز در کتاب اومده این از اون تا و منها حکمال حاکم به تنظیف لین عدلتی حکمال حاکم به تنظیف الین اللتی تداهاها رجلان, تداها رجلان به حیث و یعلم و صدق عهده ما و تفسیل یک اینیه دو تا مدعیه گل داره یعنی هر دو میگن تمامش مالبنه. زید میگه تمام این زمین مال منه همون میگه تمام این زمین مال منه یک اینیه دوتا مدعی داره مدعی هم نه به نحوه جز بلکه به نحوه کل مدعیه در این موارد در محکمه مغازینش بعد از اینکه میشه بعد از تعارض بیانات اگه هر دو بیانه دارن و اگر بنه یه هر دو حافظ باشه و سایر پروهاتی که برش مترتب. یا اگر در مواردی که بینه ندارند تحالف بعد از تحالف حاکم شهر و قاضی حکمه به تنصیف میکنن این یک این عین ای خارجیه یا تمامش مال زیده یا تمامش مال امر این حکم حاکم به تنصیف یقین هم بر خلاف علم تفسیری حجت ماست چون علم تفسیری داریم این این واحده مالی یکی از این مال دو دوتا نبوده تنصیف به معنای مخالفت با این علم تفسیریه انتها ما تنظر این رو نمیدونیم این تمامش مال اند بوده یا تمامش مال زید بوده و حکم حاکم که بر خلاف این علم تفسیلی تبده از علم جمالی چطور که طور مخواهم توضیحش حکم الحاکم به تنظیف لید اللطی تدعاها رزیولان به هیچ یه علم و صدق و و که از کن زید تمام به همون بخشیده بعد اون دوتا بچه داره هر کدوم مدعی یک سبب انتوادیه یا یک معامله رو گرفته هر قدوم حالان یک سبر مستقید رو در ادام میکنن که تمام این, این رو تملک کنند. در این موارد حکم کم و از خلاف اون ماست به اینکه این, این مال یکی از این دوتاست وقت وقتی تنظیف میشه شخص سالس میتونه بیاد این رو از این امر و زید بخره چون از هر قدومش بخره این یعنی داره که این نصفی الان از این داره میخره در واقع شاید مال این نباشه مال دیگری باشه فا این لازم ازاله که لازم این ها جواز و شراع سالس لن نصفه جمیعا من کل در منورما. هر دو نصف میتونه بخره نه که بگن آقا یک نصف رو بخره هر دو نصف رو میتونه بخره با اینکه وقتی هر دو نصف رو خرید یقین پیدا میکنه علم تفسیده پیدا میکنه به اینکه نصفش رو از غیر مالک خریده نصفش یقینم حالا غیر مالکه حالا اون غیر مالک نمو باشه یا زید باشی وی یعنمو تفسیدن عدم انتقال تمام المال الیه من مالک الواقعی چون علم تفسیدی داره که نصفش مال غیر مالک و این که رو شد و توجیه میکنی، حاکم به تنظیفه، در این موارد چی بگی؟ لازم نیست اشمار حالتی که چه کویت حاکم و بعدش میتونه جانه، اما جانه، حاکم شدیمی نکنیم برای خاله از این میل کنیم، چون اون بستشیه یعنی حاکم نباید حکم بده یا این شخص نباید بخره بدوم ایش داره بلی افرش در آخر درست یکی از این اگر باید تشاشیم دیگه این جایی حالا کل تقریم قابل به این که این علم تفصیلی که متولد در این مجموعیه قابل همه هجیتش نیستن دیگه چرا؟ بخوادیم میگن شخص ثالث میتونه تمامش رو از این دو نفر بخر و میتونن درش نماز بخونن این چشکایی ندارد و میتونن بفروشن این شخص ثالث هر رو میتونن بفروشن ما اجاره ای مالی میشه یعنی ما مالی یکی از این که الداینس ندارن در محکمه میگه تمامش مال من یک عین نمیدونه مال دو نفر باشه نمیدونیم دیگه میگه رو به تنسیف میکنه راه نیگه نداره. نیم دیگه نداره مستری دیگه که اینا نیست. میاره همین که اخرالعالم آخر و قنق برده که دا حل به شخصی که مال منه بیانه بیاره خوب میرن مشتیگه اگه یه نیابرده این یکی پس هم بودم شخص پس هم نخورد میرن به دومی بیانه آورده همیت چون تو که جفتشون بیانه آورده هم بیانه جبتشون خب آورده و اینا ها رو میتونیم قسم ما رو میتونیم در موالی هم هم موجود. و, و, و یعنی نداشتن هر دو این این هم کل به اینها این به این که علم تفسیلی متولد از علم مجموعی رو چیت نداریم این را نمیخواد به که نمیشه برخلاف خلاف نصوص که ما بیا توجیح بکنیم بگیم بیایم بر نصوص ما بشن و نمیکنیم. این تنها راه همین تنصیفه لذا با اون علم متولد از این مجمالی هم مخالفت نشده بخاطر این که باب قضا حاکم بر باب فقه برام فقه مبانی داریم و باب قضا خودش موازینی داره موازین قضایی بر مبانی فقی از نظر فقی اگر ادعای نباشه اگر اینا مالکن مالک هر کسی مال خودشه ولی اگر اومد از فقه فراتر رفت ها اشخلاف داشتن از یک امور اعتباری مالیت و ملکیت همسالین ها بره بالاتر نوبت میرسه به موازین قضایی بنابراین این یکی از این دو نفر از نظر فقهی مالک بوده ولی وقتی میاد به محکمه قضایی میرسه قوضا دیگه عوض میشه بنابراین حکم حاکم به تنصیف حکم واقعیه نه حکم داده مثل اینکه ما یقین داشتیم به اینکه این مال مال زیده الان اینو تقسیم کرده حاکم شد بین زید و هم کسی میتونه ایراد بگیره چه ایشگاه دیده بنابراین حکم حاجم فراتر از یک حکم اعتباری مبتنی بر مبانی ظاهری فقه و این شعبه از تشتی قاضیه قاضی تسبلت بر این نوع تشتیات رو داره اینطور نیست که بگیم نصف این مال مال غیر مالکش بوده اون از نظر عرفی فقهی اونطور بوده ولی الان حاکم شد اومده مال امر رو بود کرده مال زیت باشه این تضایی هم در کار نবুده اشکال نده میشه از یه آره یعنی ملکیت شرعیه. ملکیت شرعیه که غیر از ملکیت انفیه حتی در مواردی که تضایی هم در کار نباشه اختلافی هم نباشه بل بدایه حاکم مال امر رو اختصاص میده بهش و مثل خیلی از موارد مصادره مصادره انوار میگن مال ما رو بردار مال شما نیست قبلا مال شما بود حاکم شهر برداشته داده به امر که شما مال شما نیست پس مصادره یکی از این موارده است چشگاهی هم نداره با خاطر این مغازین غذایی بالاتر از مغازین صنف اینم برگشتش به حکومت قانون بر حکمه یک نظریه هست و اون خیلی بحث نشده و اون اینکه ما هوالفار بین فتاوای فقها و احکامی که تدریمی، قانونی، تشریعی فردشون چیه مثال واضحش در رابطه با ازدواج باکره یه دشیده بدون ازن ولیش این پدرش این از نظر قانونی و افروز که ممنوعه ولی فتاوایی به جواز هم داره. حالا ما چیکار کنیم به شخص بگیم آقا بیا شما از این آقا تغلیق کن اینا غیر سناییه غیر فنیه مقلد یک شخصی که قائل به منه بگیم بیا شما در این مسئله از این واقعا تدبیر تا بتونه اینو متعش کنین دختر دانشجو درسته به نظر من باطل یعنی ما در مواردی که قانون اینطوری داریم، فتاوا لااقتضایی میشن در در کار نیست خاصیت فتفاست های می افطه. چون فتفا با مال موارد جهل دیگه شخص چاهده خب بره تبلیج کنه رو بگیره در مواردی که قانون باشه جهل اوز حساب نمیشه نزا خدایی نداریم این؟ که مفتری اجتهادی الان سنسل از مرد تبلیج تبلیج میکنه این مگه اگه شما این ها بیدیم تو تو اطور احتمالات بگیر را در این کام و, و این در قانون هم بحث میشه. هم قانون این مرجع خودشون و اون داره میکنه در این موارد نمیتونه بکنه. با با نظر شما نظر میتونه. که یه نظریه متعرض نشده خودش یه نظریه دیگه که در موارد قانون اینطوری طوری داریم شخص دیگه نباید تقلیل کنه. ما بگیم ما به این نظریه رفتیم اینو بایش ازدباش کردیم همین قانونی که الان مرسومه نه قانون اسلامی باشه آن کاری به کشورها نداره قانون اسلامی باشه لذا خیلی از موارد موجب خیلی از مشکلات میشی خیلی از طبعات بدی هم داره با این قانون رو نداشته باشین طبق این فتواهی به جواز مرتکب این کار بشین نه مطلب قانون مطلب قانون قانون گنام در کشور مرسوم عام رو نه از قانون رو داریم یاره به مساله هم نداریم در هر مورد به قانون برای کشور این <تصفح> همیشه حکومت داری قانون میخواد دیگه هر حکومتی باشه حکومت نوعش هر چی باشه قانون داره برای داره کشور قانونش هم مفروض ما اینه که اسلامیه از اون صافیای خودش رد شده بعد در این موارد ما بیایم بگیم یک فتوایی به جواز هست که برخلاف قانون هست کسی عذری نداره حتی اندالله هم عذری نداره با بودن قانون نوبت به فتوا نمیرسه. رسه میگن که الهکم والقانون قانون، حکم و قانون تنقه زلفتوا ولفتوا یعنی <تصفيق> این که اون ناقضی ولی فتفا ناقض و حکم و قانون نیست این مسئله عادیه ولی با روش بحث نمیشه حالا به علدی رو بحث نمی کنم از این موارد؟ قبلا این شخص به نظر عرف مالک تمامین بوده از این موارد به حکم حاکم و قاضی مالک نصفشه اون یکی مالک نصفشه نظریه کدوم نظریه نه نداره باید اجرا بشه دیگه بله باید اجرا بشه؟ کسی حق نداره به استناده به یک خطبای جواز با کدر رو بدون ازنگلیش مطعه کنه اونا رو مناقشاتی مناغشاتی درش هست که خود اونا جزم بهش ندارن و ولی در مقام اجرا اونطوری نیست یه تساغلاتی دارن گیرهایی داره ولی منحصم مجموع قانونی که گفتیم از تمام اتزایت شده بود ولی خواهی نظریه هستیم ولی خواهی نه فتوا شون نداره میگم باید این گفته بشه دیگه باید گفته بشه ولی خب گفته نمیشه از دو طرف هم اینها مطرح نمیشه و اینها شاید به خاطر زعایت حال دیگران برای احترام به انظار خوبه هاست آره نمیشه به خاطر احترام به خوبه ها باقا هم داری ندارم برای که معارضه با حکومت نماشیم و انترام نیدیگه احترام هم مطلق نمی کنید این که که عمل مغلقه دو تا باشه یکیی که ندور مسته دلتانه باشه یکی مختلفی باشه یکی باشه باشه که از اون ماند درست, درست آرهی بنابراین به الان بین عمل به فتوا یا قانون موجود تنفیذ شده قانون مقدمه دیگه شک نداره قانون مقدمه حتی این بله این در مقام نسموله ولی آنه قانون اینا رعایت میکنه مستاد واسطه میگه اصلا هر که هم هر بود گفته نمیشه خاطر گران این که حکم حاكم تابع موازین قضاییه موازین قضایی قیلی از موانی فقیه بنابراین ما در موازین قضایی استصاب نداریم نا سابقا بحث کردیم چه سالهای های های بحث می که استصاب راه نداره این اصول عملیه سایر اصول عملیه خیلی از اصول که از مبانی فقیه حساب میشه و در باب قضا مطرح نیست اون موازین خودش رو خود. اون اون رو دست فرستاد به اورژانس اینا اینا رو نپذیرفتن اینا رو ببین دور شما از کجا کدوم مشته اگه به همین مشتهیت برگرده که قایده به جوازه آره دور بیش مشتری مشتهیرینه دیگه یک یه انسجامی باید باشه دیگه با کنیم کنیم یه انسجام باید باشه یعنی در قانون بزاری نه؟ یه انسجامی میخواستان در یه از نیم ضعیفه ولی من حیث المجموع در مواقع قانون هست نمیشه به فتوه عمل کرد اونایی که یه اشکالاتی داره اونا معلومه مغنیه اصرار به عملش نداره اصرار نداره که دیه حتما مساوی تقسیم بشه لایه چی نظریه گفته شده و تصویب شده و مونده پای نداره حالا باز اصل نظریه نظر از که میشه کسی بگه نه اینطور نیست هر کجا هر شخصی اگه اینطور باشه بگونه با هر جور دیگه بگیم هر شخصی از مقلد خودش استفدار کنه کاری به قانون نداشته باشه این مرز تقلید شما چه میگه اینطوری باشه اونم هر میشه لااقل در بعضی از امور نمیشه در امور حامه نمیشه نیاز به بحث و بررسی داره از حکم حاکم باعث میشه که این ما تنصیف بشه عن که حاکم انوانی نیست که بیایم برگردونیم که بگیم عرف میگه این مال قبلا مال این بوده یا شخص تمامش رو مالک بوده نه این جز احکام ذاتی حساب میشه غیر قابل تغییره لذا چون ذاتی احکام حکم حاکم ذاتیه یکی از بحثایی که در باب قضا مصلحه نظریه تشدید نظر یعنی چطور میشه حکم قاضی رو ما بدیم به دایره تشدید نظر بخانه ذاتی تی نظر معنا نداره پس مطرح در باب غذا نا همش مطلعه. که دیگه از اعتباریت خارج وارد در ذاتیه و محصل بحث دیروز شد که احکامی که از طرف شاره میاد یا خصوص احکام رو گفته موضوعات رو نگفته میشن انوانی یا حکم گفته و موضوع رو هم گفته مشخصش کرده میشه ذاتی حالا تشخیصش در موارد مختلف بوده خود حالا قبلش یا نه دیگه اینا منصوبن منصوب حکم اینها رو منو مقدمات و و برخور بازبینی و بررسی گفته که یه بحثه اینطوری مثلا. که بحث اینطوری مثلا. یعنی چه شوهه دلش. یعنی تجدید نظر برای چی باشه؟ و منها حکم هم فی وان على احد درهمون و آخر درهمان. یکی ز یک درهم داشته هم دو درهم هر دو آوردن این سدره هم رو بیش یک امینی به امانت رو داشتن. امانت مالکی و تلف احد در آم، من اندل دعی یعنی یکی از این ستا تلف شد حکم خوقه ها به اندن لصاحب الاسنین واحدن و نصفن اونه که دوتا آورده بود یک نصفی میدن. و دل آخر نصف هم. اون یکی هم نصف میدم. خب مال اون نصف میشه مال این یک چهارم شده و این برخلاف واقع یک درهم وقتی رفته چرا حالا اون, اون که در... دو درهم داشته به سه چارم مالش برسه بود یعنی که یک درهم داشته به نصف مالش برسه یکی از این دوتا به سه داره میرسه اون یکی به نصف مالش داره میرسه اینه که علم تحضیح بر برخلاف این عدم تفسیری برخلاف خلاف عدم موجود در بین یکی از این دوتا رو گفتن یقینا یعنی مال اونه یکی صاحب دوتا بوده یکی از این درهم ها الان سه تا بوده دوتا مونده دوتا مونده میگن یکیش یقینا یعنی مال اونه که دوتا داشته توی یکی از در رفته دیگه لذا یکی از اون شخصی که دوتا داشته براش باقی مونده لذا اینی که الان مونده که تاست یکیش یقینا مال صاحب دوتاییه بعد یکی وزن میمونه که مال خودومشه می اونم میان نصفش میکنن جمعا بین اینال حقه نصف میشه به یکی یکو نصف میرسه به یکی نصف فا اینهو بدیت از زاویه کلفا الا مخالفت تن این, این مخالفت با یک علم تفصیلیه که و اخذ در مشترکه بین سالک ما سالک این شخص سالک این درهم مشترکه بین این دو تا رو بگیره و این نهو یعنی این شخص سالک یه عدم تفسیلا به عدم انتقال من مالکه حقیقی علیه یعنی این مالی کنان داره میگیره اون دره هم مشترک رو که داره هم میگیره یقینا از مالی که واقعیش نگرفته این هم لسه همون در این موارد هم بازیشون حکم حاکمه موازین قضایی داری میشه و من هم مالو افت رو به این شخصه شخصی اقرار کنه که این فرعت مال زینه ثم افت رو به ها دل آخر بعد بگیم مال عمره فینه یعنی این موقع یعنی همه ملستونی دیمی متلعینه بعد درفلی سه دسته ها الی الاول یعنی به دو نفر رو ماده اقرار کرده یک مال رو برای دو نفر اقرار کرده به اخلی خود این رو میدن به دومی دو هم باید قیمته شده بود و این برخلاف واقع واقعه اینه که یک فرصه مالی قدیمی داشت اومدیم عمدن، سهرن، جهلن هر طوری به دو نفر اقرار کردیم گفتیم این تمامش مال عمده بعد گفتیم تمامش مال زیده در این موارد گفتن این نشط رو به اولی میدن قیمتش به دومی دو میدن این برخلاف واقع مخالفت با واقع یعنی مخالفت با یک علم تفسیلی متولد از علم اجمالی این چطور میشه, میشه توجه نیش کرد به این همون و رمولستانی بگیم مطلع این فیلمه یعنی باز همین هر قد و عبدی الاجتماع ال اینه و قیمته این ده این لازمشتیه لازمش اینه که این با قیمتش ما به یکی دادیم به یکی قیمتش بدادیم حالا یه شخص صالح پیدا شد اومد اینها رو از اینها گرفت قیمت رو از این گرفت یعنی یک فرسی بهش داد و قیمت رو پول از این گرفت و یه پولی داد و رو از آن یکی گرفت خرید و هر دو رو مردخونه یعنی هم قیمتی که به این داده بودیم اومد دستیم هم فرستی که به اولی داده بودیم به دست نیزم و میرسیم لازمش این که پیش یک نفر دوتا مال جمع شده خود فرس و قیمتش با اینکه واقعا یکی از اینها جائزه و دومی یقینا حرامه اینه چطور تو میشه توجیهش کرد که ما ایراد یعنی کاشفیت پالشی اینطوری تونه باشه. بارش کاشفیت از چی؟ کاش از واقع باشه. ما از و به بده، اگه کاشفیت همین پیش میاد. کاشف از یک واقعی که ما واقع رو میدونیم خب یک واقع و واقعیت دو تا باشه دیگه، رو در اگه بچه‌ها واسه ما بشه روز یا نه اگه کاوش حقیقت تازه همین شوهه پیش میاد. اگه نه بگیم بس. کاشفیت نداره، موضوعیت داره، نه شبه ما میشه اقرار یه موضوعیت داره. مثلا ما کاری به واقع نداره، این فرض کی بوده؟ شخصی اومده شروع کرده به اقرار کردن. ده تا اقرار کرده، ده تا فلسفه بده چون نداره یکیشو میگه نقطاش قیمتش شویم. آیا اقرار موضوعیت داره، به شفافیت داره. انتواش کاشفیت از واقعیت داره که ما بهش میدونیم علم داریم خب این زتونقیزه جمع شده بین این و قیمت پیش شخص ثالثی و اگر اقرار موضوعیت داره ما از این به واقع نداریم هر کسی اومد اقرار کرد اقرار و قضا الا انفسه هنوزن یعنی نافذ بنابراین این علیه خودش اقرار کرده و چون اقرار کرده نافذ موضوعیت هم داره این هزار تا اقرار بکنه هزار تا قیمت قداثه باید بده حالا اقرار اینه پس اگه موضوع یزدان تکرار میشه دیگه یه اینو میده بس قیمتا میده ولی کاوشیاش فرضاً راحت نمی‌شه بر خلاف میشه دیگه همین محض پیش میاد حالا این اقرارها یه چیز اساسی هست یعنی نیست ان ماعذی بینکم بالاجمان والبدینات اقراری در موردش اقرارش اقرار این همه میان طول و تفسیر براش بحث قائل شدن نیاره مطرح میکنه نه بیانه نه قسم لذا ماهیت اقرار دیده ماهیت بیانه و ایمانه در مقام هسته هستشم با این نما اومده و جز کلماتی که اصلا به معنا نشده این نما عبضی مینکم و الایمان اقرار در کاریسته پس اقرار چ این بحث میکنه و قبلا مصطوفا در رابطه با اقرار ما بحث کردیم که اقرار جز این موازین قضایی حساب نمیشه ما نمیتونیم با اقرار شخصی رو مکلف به پرداخت پولی یا چیزی بکنه و به طبع همین اعتراف هم میان اقرار در امور مالیه اعتراف در گناه و جنایت و امثال این, این دو این دوتا ماهیتش باید مشخص ما بشه که از نظر قضایی اقرار و اعتراف اینها یا در عرض ایمان و بینات یا در طولشه یا نه نه یه چیز دیگه اثبات میکنند کنن به مقام قضا نداره قضا و بینات و ایمانه. روزا یه بحث اینطوری میخواستم اگه فرصتی باشه من حتی این رو اگه فرصتی نباشه که جمله رو مطرح میکنیم برای تنوید از هام که بتونید تحقیق کنید در اطرافش الان کل تقدیر اون چیزی که در مقام قضا مفیده ایمان و بینات حالا این بیان بگیم آقا شخصی شروع کرده به اقرار و هزار تا اقرار کرده هزار ت الان دو تا اقرار کرده دو ما جمع اقرار و علی علا انفس هم به عنوان روایت و نس شرعی نمی مزید اقراری مگه باشه اقرار, اقرار و بنابراین ما اقرار شرعی نداریم که اقرار و علی علا انفس هم جایز رو بیارید دلیل بر نفوز اقرار میگیریم اون اصلا باید نیستیم میمونه اینکه اقراری فاقیتی بعد یه موار شخص میاد اقرار میکنه خب ما اینو نمیتونیم بگیم نیست اقرار میکنه یه شخصی میاد بگه من زیگه کشتم من این مال رو دزدیدن یا میاد اعتراف میکنه به یه گناهی و امسانیم اینها نمیتونیم این کارش بکنیم ولی ماهیتش و آثاری که بر هم متردت میشه و موقعیتش در باب قضا کجاست یا رو باید بدونیم و با تمامی طول تفصیلی که ابحاث اقرار و اعتراف داره هیچ ارتباطی به ایمان و پیدا بیدن اونها یه چیز دیگه هست یه چیز دیگه ولی اون چیزی در کتم ها شده ایمان و اینات اقرار تا آخر اینا رو در یک زاویه میدونن و در طوبه هم یا در عرض هم حتی میدونن اینو مخوان بگیم این نیست و نیاز به یک ذهنیتی داره نسبت به اقرار ایتران حالا مصنف فرموده و از خیلی نسکنم ما این هست که اگر شخص اومد گفت این فرح مال امره خب میدن به امر بعدا اگه بگه مال زید بوده به زیدم باید قیمتی بده. اصل اینکه آیا اقرار یک طریقه یا موضوعیت داره موضوعیت داره یا طریقه خب این مشخص نشده ما بیان بگیم این نمی پذیر یه نمی پذیر. و یبی اوم ما به سمن واحد فهین ازن و عدم و انتقال تمام سمن ایده لکون بعض مسمنهی مال المقرفه فیل اگر شخص سالسی اومد یه خونهی داد و در قبالش فرز رو از عمر گرفت و قیمتش و از خالد گرفت یقین داره به اینکه اون سمنی که در مقابل اینها داده نصفش مال خودش نبوده یعنی مال، مالی که واقعی نبوده به این تارازه چطور میشه هندش کرد حالا مشهور به این فتوا قاعد هم به اینکه اینطوری اگه کسی بیاد اقرار کنه سر تا اقرار بکنه باید به یکی اینش رو بده و قیمتش رو بده ولی حالا این آیا از نظر خود افعاظ قضایی قابل قبوله یا داره یه که دیگه قبول بکنه تفقیه چه میزانینه قبول و منها الهوک بین قساخن عقد متنازع فی تعین سمنهی و مصمنهی علاوه وجهن یقظافیه به تحارب چیزه دیگه باز قسم یعنی بعد از ذکر قسم اگر خوبی بشه به انتصاخ یک اولی که مورد تنازو بوده در تعین زمنش یا مصمنش و تنازو این به یک وقتی بوده که یغضا اوزاقیه به تعالی مثل اینکه یکی بیانه نداشته که باید داشته باشه من بیانه تولا و یمینور علی من کرده اینی شخص بیانه یا یعنی اینکه بیانه هر دو دارن و تعالیز و نیاز به این بحث داره که آیا هر دو بینه بیارن مورد قبوله یا نه بنه مدعی بدر میخورهبنه شخص منکر ب در نمیخور هزارتا بنه بیار بینه شخص مدعی به درد میخوره کمان که قسم شخص مدعیه به درد نمیخوره شخص مدعی بیاد قسم بخوره بدرد نمیخوره مدعی باید بینه بیاره و شخص منکر باید قسم بخوره هر دو بینه بیارن یا هر دو تحالف اینها محل شبهه و اشکال و خیلی از بحث‌هاست بنا به اصل تحالف الان مورد نزاع بحث قضاییه میشه تحالف رو بپذیریم یا نمیشه تحالف رو بپذیریم یا اینکه اینکهاردو برینه بیاره و دو به خاطر وجود دوتا تا بینه ما حکم رو تنصیح بکنیم شخص که میتونه بینه بیاره یا نه اساساً اصلا حقش نیست و حق نداره بینه بیاره و بیاره از ازدار شدید نافذید شخص مردهی بیانه بیاره و به ما اگه نیاره قسم هم, هم نداره و چیزی هم نمیشه اثبات کرد ولی بیان بگیم, بگیم شما بیانه نیاوردی اون شخص قسم میخوره. اینو میتونه منتظم بشین ازا در قسمهای مردوده و امثال اینها در همون باب قضای شرحن دیدید اختلاف درش هست شخص میتونه قسم مردوده بخوره قسمی که حق اون بوده یعنی مونگهی باید قسم بخوره اون به خاطر دینش نمیخواد بخوره و شخص مذهبی میگه من میخونم من این قسم بخورم میشه قسم مردوده یعنی قسمی که مال خودش نیست مال دیگریه اینو شما قاعده که نیاز به معنای شما داره و منشیشم شرح ده که خیلی مبسوط اونجا بحث کرده لاغت ریشه اختلافات اونجا داره علاوه از یه به تحالف کمالو اختلف یعنی بعد از که اتفاق دارن در اینکه قیمت این شی مثلا زد درهم بوده اختلاف دارن در اینکه که مبیع به این سمن معین زد درهم آیا عبد بوده یا جاریه بوده اختلاف در مسمن به ان ردد سمن علم مشتری اگه ما این سمن معین رو به مشتری برگردونیم بهش بدیم بعدا تحالف مخالفون للعلم تفسیلی به سیورت سمنه ملکن فایه اما سمنن للعد او سمنن للجاریه یه علم تفسیلی متوجه از علم اجمالی میاد و کذا؟ لب اختلف ها بعد از اینکه اتفاق دارن در اینکه مثلا مسمنشون حبل بوده یا جاریه بوده اختلاف دارن در اینکه فیکون سمن جاریت معینه عشبت دراهی دراه دنامی او معد هم. اختلاف در سمن دارن فا این نربوک برد جاریت الانبایه مخالبون دلعلم تفسیلی به دکوله ها فیلمه که یا به نحوه مصمم دنانیر یا مصمم درهم علا حال در هر کدام از این شقوبش یک علم تفسیری متوقع از علم اجمالی داریم که این فرع فقهی در باب غذا حاکم به اینه که این علم تفسیری متوقع از زلم رو چیه نداره. اگه داشت یونوش درد کنم به این تو نباید حکم بدن باگیم حاجم به این نحوه یعنی عدم حجیت علم تفسیری متولد از علم جمالی حالا این علم تفسیری ها رو قایل حجیت بشیم قایل حجیت نشیم مورد آخرم بخونیم تا برسیم به راحل های که خود مصنف قائله. و من ها منها الهوکم الناولو قال احدهما بهتوکن جاریتا به معتن این اگر اختلاف دارن در اینکه که آیا تملیک محبوظ بوده یا متجانی بوده این به من بخشیده بود یا فروخته بودی اختلاف اینطوری دارن این روی من و قال به تو از جاییتا به معتن و قال آخر و هبتنی یاد این گفت نه فروختی نه هبه کرده. یا به در اون میگه من هبه کردم اون میگه نه نه به من فروختی این نهوم آیا اگر بینه درکار نواشه تحالفی نباشه تحالفی نباشه بعد از آخر همه اینها یا تحالفان و تردل جاریتو الى صاحبه ها جاری و بیدر صاحبش ما انا نعلم علم تفصیل منتقاله ها منک صاحبه ها الى صارزه به شخص صارز منترم شده الى غیر زالی من الموارد دلتی به علیها علیه متتبع، مثل حکم فقه به جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوله در شبهات غیر محصوله قاعدم به جواز ارتکاب همه اطلاف با اینکه علم تفسیح داریم میگه باز مرتکب به حرام شده میگیم غیر محصوله رو میگن همه همه اطلاف که ما باییم میشه همه حالا روپار که شرص هم رو ارتکاب کردیم دستور داد همه رو ارتکاب کردن یه که آمر باشه شخص آمر سبب دیگه تمام گناه مال سبب میشه ولی اون مباشر اراره از محل اقتلاش خارجه ولی سبب میتونه یه سببی دستور داد مباشرین همه اطراف رو کردن بنابراین با تفسیر بین سبب و مباشر حال میشه معلومه مثل جواز ارتکاف در شوخهی غیر محصوبه و جواز تصرف در مال مخلوط برابرین که بعد این که میگن شخص توبه کرد میتونه در همه اموال تصرف کنه این هم مخالبه شد یک دره همش داخل ربا بودی یا نبوده چطور ما حکم کنیم به جواز تصرف در مال رباوی بعد از توبه اینها رو مثال میزنن که در هواشی چه او چه آشتیانی همراه رو آوردن حالا این هشت مورد بود از فرعات فقی که ظاهرشون اینه که علم تفسیری متولد از این مجماره خود نداره و این با مبنای مشهور نمی مشهور با بایلن به حدیعیت ذاتیه علم و قطع و حدیعیت ذاتیه حدیعیت عقلیه هست غیر قابل تخصیص. بنابراین چرا در این موارد تخصیص نمی کنه؟ این احکام چرا مخالف با این قاعده حدیعیت بده؟ اینه مخالف توضیح کنه مصنف تا را حل آورده این تا رو جمیعا شما هم را جا بخونید بعد هفتمی هم, هم همون بوده که طبق تفصیل انوانی و ذاتی گفته بودیم ولی به یه بیان دیگه این فردا فردانباز میگیم که آسانتر از اون بیانی که دیروز گفتیم که شاید خیلی از شبهات دیگه در ذهن نمونه و حل بشه ولی حالا شما شش تا رو حتما بکنید که مسنده شده بود مقادیم رو و فروات رو حل داشونه جزبه هایی که امروز میدشتیم از صفحه دیویست تا دیویست ده اینها مرتبه به مباحث مکاسبه به خوب باز تفصیل به انوانوزاته یعنی مواحظ مکاسبه ساک میشه ولی تفصیل همون انوانوزاته در ادامه همه جزوهایی که داریم می برای llamamos